تابم همه با روی چ گل بندد، دستم همه با ساغر مل پیوندد از هر جزبی نصیب خود بردارم، زن پیش که جزویم به کل پیوندد بندد. عشقی که مجازی با بدابش نبود، چون آتش نیم مرده تابش نبابد، آشق باید که ماه و سال و شب و روز آرام و قرار و خردخوابش نبود عمرت تاکی به خود پرستی گذرد، یا در پی نیستی یا هستی گذرد مینوش که عمری که عجل در پی اوست آن به که به خواب یا به مستی گذرد قوم گذاف در غرور افتادند و در طلب هور و قصور افتادند معلوم شود چه پرده ها بردارند که از کوی تو دور و دور و دور افتادند